اعوذ بالله من الشیطان الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بی انداز نحبان نحاویت باره نون والقلم و ما یسترون نون سبگان بقلم و آنچه را با قلم می نفیسند ما انترین عمت ربی که بی مجنون و نعمت پر تو مجنون نیستی و این لکه لأجر و ممنون و بی گمان برای تو اجر و پاداش عظیم و همیشگی و این لکه خلق عظیم و بی گمان تو اخلاق عدید و برجسته دارید فسا تو بصیر و یرصیرون و بزوجی می تو می‌بینی با آنها نیز میبینند که اینکم المفتون که کدام یک از شما مجنون هستید این ربته و اعلمه المون ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین تو بهتر از در کس می داند چکتی از راکه او گمراه شدد و هدویتی آفتگان راونی بهتر می شنافد فلا تقعیل مکذبید حال که چونین است از تقدیر کنندگان اطاعت مکند آنها دوست دارند نرمش نشاندهی فا آنها نرمش نشان هم و لا تصع کل حلات مهین با اطاعت از کسی که بسیار سوگان زیاد می کند و پستا مکن هممز مشاین دنبیم که بسیار عیف جو و سخنچین است و بسیار مانه کار خیر و تجاوزگر و گناهکار است اطل بعد ذلك زنی بر اینها کینه کین و پرخور و خشن و بدنام است ان مبادا بخاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فرابان است از او پیروی كنید هنگامی که آلات ما بر او خوانده می شود می گوید اینها افسانههای خراكی پیشینیان اسد بزودی ما بر بربینی او علامت فتاق ناند می نهیم انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنت ایز اکتمو لیصرمونا مصبحیم ما انها را آزمودیم همان گونه که صاحبان باغ را آفمایش کردیم انگامی که سبگاند یاد کردن که می به های باغ را سابگاهان بچینمی با هیچ از آن استثناء نکنم تطاف علی اعطائكم من ربک و هم نائیون اما عذاب پراغیر بر تمام باغ آنها فرو دامد در حالی که همه در خواب بودند و و آن باغ سرسر همچون شب سیاه و سلمانی شد بدانند یکدیگر یک دیگر را صدا زدند یعنی وقوع و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوهها را دارید آنها ها کردند در حالی که آهسته با هم میگفتند مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود آقا ح آنها صاحب گاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند.بل این که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند ما راه را گم کرده ایم بل نحن محرومون بلکه ما محرومين قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تتبعون يكزنها كتم عقل فر بود قال آیا به شما نگفتند چرا به بی خدا نمیگویید قالوا سبحانا و گفتند منصف پربرقار ما مسلما ما ظالم بودیم سپس اقبل رو به هم کردند و با بملامت یکدیگر پرداختند قام وای بلند چاد گفتند وای بر ما که طغیانگر بودیم آج ربنا ان يبدلنا ما را ببخشد و بهتر از آن را به جای آن به ما بدهد چرا که ما به او دل ایم کذاری که العذاب و لعذاب الاخرت اتبا لو کانو یعلمون این کنه است عذاب خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستم این للمتقین عند وقته جننات نعیم برای کردن نفس پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت است آثنا عن مسلمین کالمجرمین آیا مؤمنان را هم چون مجرمان قرار دهیم ما لكم کیف تحكمون شما را چی چه می‌شود چگونه داوری می‌کنید ام لکم کتاب فیه تدرسون آیا کتابی دارید که آن درس میخوانید خانید؟ این لکم لما تخیرون که آنچه را شما انتخاب می از آن شماست ام لکم ایمان علینا بالغه الى یوم القیامت این لکم لما یا این که اهد و پیمان معکد و مستمری را تا روز قیامت بر ما دارید که هرچی را به نفع خود اختیار می کنید برای شما قرار می دهد سلم این از آنها بپرس کدام یک از آنان چنین چیزی را تصمیم می کند ام لهم یا اینکه که معبودانی اگر راست میگویند گویند معبودان خود را اراع دهن یوم یکشف عن ساک خاطر بیاورید روزی را که ساق پاها از وحشت بره نمیگردد و دعوت به سجود شوند اما خاطر بران نیستند قاشاتن و این در حالی است که چشمهای آنها به زیر و تدلت و خالی موجود آنها را فرا گرفتن انها پیش این دعوت به می شدند در حالی که سالم بودند ولی امروز دیگر سبانوهی آنزام ندارند فزوهی و بهذا سنستدرجهم من حيث لا اکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب میکنند کنند، کن و ما آنها را از آنجا که نمی دانند، تدریجا به سوی عذاب پیش می بریم. و به آنها مهلت می دهیم چرا که بیگمان نقشه های من محکم و دقیق است. آم تسألهم أي رم فهم مغرم یا اینکه تو از آنها مطالبه مزد میکنی که پرداخت آن برای آنها سنگین است الغضهم يتوبون یا اسرار خاک نبی آنها و آن رمینه بیان قصد بر لحوم ربک و لاتکم ک صاحب الحوت اذندا و هو اکنون که چنین است، تعب کن، و منتظر فرمان پروردگارت باش، و با مانند صاحب ماهی نباش در آن زمان که خدا را خواند در حالی که ممدود اندوح بود. لولاً ان و اگر من رحمت خدا بياريش یاریش اومده بود بیرون افكنده ميشد در که مسموم بود فايو كتاب له ربه, ربه فجعلهم من اورا قرار و وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون نفيك كافرًا هنگامیک اوجاز قرآن را میشنوند ترا با چشمان خود اراکنند و میک و جامعه او دیبانا و ما هو الا ذکر للعالمین در حال اکی این قرآن جز موجه بیداری برای جهانیان نیست